وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا الْبَلَدَ آمِنًا وَعَجْلُبْنِي وَبَنِي أن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنبِيَاءِ وسيد الْمُرْسَلِينَ وَأَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ آخرين درس ما دو ما در راستای گواهی که بر وحدانیت خدا داریم دادیم و گواهی بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم دادیم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما گواه و شهادت داریم بر وحدانیت خداوند و بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلام. که گواه دادیم بر اینها باید ایمانم داشته باشیم به کتابهای آسمانی ایمان داشته باشیم به پیانبران خداوند نه تنها رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکه به پیانبران خداوند و همچنین به روز آخرت و قضا و قدر خیرش و شرش همه اونها باید بهش اعتقاد داشته باشیم ایمان من کامل نمیشه ایمان, ایمان نداریم تا اینکه هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از طرف خداوند اوورده و بهش ایمان داشته ما بهش ایمان داشته باشیم. آمن الرسول بما انزل ایلیه من ربه والمؤمنون پیانبر خداوند رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ایمان اووردن به آن چیزی که از طرف خداوند نازل شده. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ایمان به الله ایمان به ملائکه و کتابهای آسمانی و پیانبران خدا ما باید به با اینها اعتقاد داشته باشیم خداوند به خاطر که این مسائل جا بیفته به ما به خاطر اینکه ایمانمون نسبت به اینها راسخ بشه متزلزل نشه خداوند جبرئیل را میفرستد روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمع اصحابش نشسته بودند شخصی با لباسی تمیز و پاک و سفید میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و زانو و زانی رسول الله صلی الله علیه و بود علیه السلام صاحب بحر اون کسی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بحر میآورد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بود اونجا بود که جبرئیل اومد توی جمع از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید مل اسلام اسلام چیه گفت اسلام شهادتن نماز خوندن روزه گرفتن و زکات دادن و حج رفتن اونجا بعد از اینکه از اسلام پرسیدن جبرئیل پرسیدن ایمان چیه رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمودن الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و واليوم و رسوله والقدر و اليوم و القدر خیره و شره ایمان یعنی اینکه قبول داشته باشی به خداوند یعنی اینکه خداوند را قبول داشته باشی و یک تا پرست بشی، ایمان داشته باشی به خداوند و به عبودیتش، اینکه خداوند مستحق پرستش هست که قبلا بحثش کردیم در درس ها، و ایمان داشته باشیم به ملائکه خداوند مثل جبرئیل که در حدیث جبرئیل داریم که اومده زانو به زانوی رسول نشسته، بعد ایمان داشته باشیم که خداوند ای داره که سرپیچه از دستوراتش نمی کنن و حرف خداوند را انتقال به بندگان. و فرشتگان دیگر کوها به دستشون هست و فرشتگان دیگر عبرها ما باید اعتقاد داشته باشیم اینکه امورمون این چنین تطبیر می شود. این چنین منظم می شود ایمان داشته باشیم های آسمانی خداوند بشریت رو راه نکرده از وقتی که آدم رو خداوند خلقت کرده اینطوری نبوده که خداوند بندگان خودش رها بکنه بدون راهنمایی بدون کتابی ما باید اعتقاد داشته باشیم لازمه ایمانمون به رسالت رسول الله لازمه ایمانمون به خداوند اینه که اعتقاد داشته باشیم به کتابهای آسمانی از تورات گرفته از انجیل گرفته از صحف ابراهیم و موسا که خداوند یاد میکنه از اونها در قران بله ما باید به تمامی کتاب‌های آسمانی اعتقاد داشته باشیم هرچند که این کتاب‌ها به مرور زمان تحریف شده توسط یهود توسط نصارا تحریف شده ولی که ما به اصل کتاب اصل اون راه نمودی که خداوند فرستاده برای نجات بشریت ما به اصلش اعتقاد داریم خداوند هیچ وقت بشر را رها نکرده پیغمبران را در هر امت فرستاده که مردم را بیان راهنمایی بکنن، هدایت بکنن به سوی بهشت خداوند. بله ایمان باید داشته باشیم به کتابهای آسمانی اون کتابهایی که راه نجات ما درش هست. و ایمان داشته باشیم به پیامبران خداوند که اومدن اون وحی خداوند، اون کتاب خداوند را به ما آوردن. اون کسانی که قرآنی مثلا بالفرس که داریم که بر وحش شده باید قبول داشته باشیم و بپذیریم که این کلام کلام خودش نیست اون پیامبر اون حرفی که میزنه حرف خودش نیست و ما ینتق عن الهوا از خودش از نفس خودش حرف نمیزنه بلکه وحیی ان هو ایلا وحی نیوحا بلکه اون حرفی که میزنه وحی از طرف خداوند پیامبر اون کسی هست که از طرف خداوند برش وحق میشه و اون پیامبر نیمده که بگه که ما او را بپرسیم بلکه اومده به ابلاغ بکنه فرمایش خدا را به همون برسنه و بگه ای بنده تو باید بنده خدا باشی نه بنده مخلوق باید سر به سجده او در بیاری بله به همه اینا باید اعتقاد داشته باشیم و همشین اعتقاد به روز آخرت و یوم الاخر اعتقاد باید داشته رستاخیز روز حساب و کتاب که باید جزای اعمالمون اونجا پس بدیم اگر اونجا اگر در این دنیا بنده خدا نبودیم دیگه اونجا خدا به دردمون نمیخوره دیگه خدا به دادمون نمیرسه چرا چون ما خدا را اینجا نشناختیم چون ما حق سپاس خدا را به جا نیوردیم حق بندگیش را به جا نیوردیم دیگه خدا اونجا فریادرس ما نیست دیگه خدا اونجا به درد نمیخوره به داد نمیرسه چرا چون ما بندش نبودیم اونجا دیگه باید عقوبت بشیم اگر ظلمی در حق دیگری آن کردیم اگر حرف خدا را گوش ندادیم در اینکه عزل خدا را اجرا بکنیم اونجا هست که ما باید عقوبت و جزاش ببینیم بله روز آخرت روز جزاست روز پاداشه پاداش اعمال نیکی کهمون رو خواهیم دید اگر بنده حقیقی خدا بودیم بهشت خداوند بر ما واجب می شود. اونجا هست که خداوند به دادمون میرسه کف... کفه اعمال نیکی نییکمون رو سنگینتر میکنه تا اینکه وارد بهش بشیم و عذابی نبینیم و خودش را از خشم ما... از خشم خودش نجات بده و ماها را از خشم خودش نجات بده. بله ما باید تلاش بر این داشته باشیم. اینکه خداوند ما را نجات بده باید ایمان داشته باشیم به روز رستاخیز، روز قیامت، روز حساب و کتاب، روزی که جهنم و بهش خواهد ورد و مؤمنین را وارد بهش خواهند کرد و و کفار و گناهکار را وارد جهنم. باید به اینها ایمان داشته باشیم. خداوند ایمان به تمامی اینها ازمون من میخواد. ایمان به خودش، به ملائکهش، کتابهاش، پیامبرانش و ایمان به روز آخرت و ایمان به قضا و قدر. خیرش و شرش همونطور که در حدیث جبریل داریم و خداوندم در قرآن بهش اشاره میکنه ان کل شیء خلقناه بقدر ما همه چیز را با قضا و قدر خودمون خلقت کردیم یعنی یه قضای سابقه بود خداوند قبل از اینکه مخلوقات را خلقت بکنه پنجاه هزار سال قبل از آفرینش خداوند قلم را خلقت میکنه و برای اون قلم دفاتری دفترهای میگذارد که در اون دفت دفترها اون قلم بنویسد تمامی چیزهایی که خواهد شد. اون قلمم نوشت همه چیز مقدر بوده. حال صحابه میگوین یا رسول الله اگر قرار شده و قرار بوده همه چیز نوشته بشه پس ما چرا عمل بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب اصحاب میفرمایند: اعملوا وظیفه شما عمل کردنه. شما چه کاری دارید در علم خدا؟ خدا قرار نیست که با علمش ما را محاسبه بکنه. شما باید عمل بکنید کوشش بکنید اخلاص داشته باشید اگر اخلاص نداشته باشید خدا از قلب شما با خبره. شما باید تلاش بکنید که جز بهشتیان باشید. شما در خودتون می بینید اراده دارید دست خودتون بالا میبرید پای این میارید. اراده خودتون نمی خوید نمیتونید از خودتون نصف بکنید. نمیتونید ب ما اراده ای نداریم ما همه اراده داریم و خداوند بر اساس این اراده ما را مؤاخذه خواهد کرد و فرشتگانی هم گذاشته که تمامی کارهایی که انجام میدیم بنویسن و ما یلفظ من قول الا لديه رقيب حرفی نمیزنه بنده مگر رقیب عتی نشستن که تمامی اون چیزها بنویسن پس ما باید ایمان داشته باشیم به این شش رکن این شیش که لازمه ایمان به خداوند لازمه شهادت اینه ایمان نداریم جز این که به تمامی اینها ایمان داشته باشی خداوند در قرآن میگوید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب نیکی این نیست که سر به سجده بذارید ولکن البر من امن بالله والیوم الاخر والملائکه والكتاب والنبیین نیکی اینه که انسان ایمان داشته باشه به خداوند به پیغمبران پیامبران خداوند به کتابهای آسمانی و ملائکاش و روز آخرت کسب بیاد نماز بخونه روزه بگیره ولی که ایمان به روز رستاخیز نداشته باشه به روز قیامت ایمان نداشته باشه یا به پیامبران خدا ایمان نداشته باشه یا به کتابهای آسمانی اون دیگه مؤمن نیست اون دیگه ایمان خودش را زیر پا گذاشته و خداوند چنین در قرآن یاد یا می کند ای کسانی که ایمان وردید به الله و پیغمبری که فرستاده ایمان داشته باشید ول کتاب الذی نزل على رسوله و اون کتابی که برای شما فرستاده این قرآنی که این آیاتش رو ما می‌گیم ول کتاب الذی انزل من قبل و اون کتاب‌هایی که از پیشین خداوند فرستاده از تورات و انجیل همه اینها رو بهش ایمان داشته باشیم و من یکفر بالله و ملائکته کسی اگر کافر شد به خداوند و ملائکه خداوند و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و کتاب‌هایش و پیامبرانش و یوم الاخر و کسی که کافر شد به روز آخرت فقد ظل دلالم بعیده اون شخص خیلی دیگه گمراه شده اون دیگه از راه حق خارج شده این دیگه کافر به خداوند شده کفر به یکی از پیامبران خدا عدم ایمان به یکی از پیامبران خدا عدم ایمان به خود خداونده و عدم ایمان به اون خداوندی هست که بر پیامبرش بهش کرده که دستوراتش را بهمون ابلاغ بکنه پس ما باید به تمامی اینها به این شش رکن ایمان باید ما بهش ایمان داشته باشیم اینها شش اصلا که اگر یکی از این اصول پایمال بشه اگر ما به یکی از این اصلها ایمان نداشته باشیم کل ایمان ما از بین خواهد رفت بله مؤمن عزیز، مؤمن عزت داره اگر ایمان داشته باشه اگر حرف خدا را بپذیره اونجا هست که قلبش مطمئنه چون خدا را داره چون حرف خدا را گوش داده ولی که اگر مؤمن بندگیش را به نیاره سرپیچی بکنه دیگه عزتش زیرف می روید دیگه هیچ عزتی ندارد دیگه خار و زلیل هست عزت ماها مؤمنین، عزت ماها مسلمان ها به ایمان ما هست به فرمانبری ما هست از خداوند و به قبول و قبول کردن و پذیرش حرف, حرف خداونده خداونده که این حرفا را به ما زده و گفته که ما باید بهش باور داشته باشیم تمامی این شیشتا اصل انسانی که خدا را دارد انسانی که باور داره به خدای خودش و حرف خدای خودش دیگر از هیچ کس جز خداوند نمی ترسد همونطور که در عبادتش در پرستشش در عمل جوارح، در اون نماز و روزش، خداوند را یکتا قرار داده در عمل قلبش هم همینطور خدا را یکتا قرار داده از هیچ کسی جز خداوند یکتا نمیترسد لا اله الا الله نف اثبات همانطور که نمازش عبادتش خاص خداونده همونطور که اطاعتش خاص خداونده و از کسی جز غیر خدا اطاعت نمیکنه و کسی جز خدا را نمیپرسته همونطور هم از کسی جز خداوند نمیترسد این مؤمن است، این مؤمن حقیقیه، این ارزش ایمانی است که در قلب اون مؤمنه خاطر کلمه توحید، کلمه لا اله الله که حقیقت معناش را در کرده نه تنها در نمازش، نه تنها در روزش، بلکه در اون اعمال قلبیش، در محبتش هیچ کس را مثل خدا دوست نداره. و آمن اشد حب لله، کسانی که ایمان آوردن، حبش و نسبت به خدا خیلی شدید تره قابل قیاس با اون مشرکی نیست با حبشون نسبت به اون معبودات خودشون اون خدایان خودشون ما حبمون نسبت به خدا طوری هست که هیچ وقت حرف خدا را زیر پا نمیذاریم هیچ وقت خدای خودمون را به هیچ مخلوقی عوض نمیکنیم و نخواهیم کرد این مؤمن عزیزه این مؤمن شرافتمنده شرفش عزتش به ایمانش به خدا منده. اگر مؤمن ایمان به این نداشته باشه دیگه عزت نداره پس مؤمن قلبش مطمئنه، قلبش آرامه، قلبش آسوده هست، آسود قادره. اون مؤمن چون خداوند یکتا را دارد، چون اون معبودش به دادش میرسه. فریاد رسش هست. و ایمان داره به عدل خداوندی، اگر بنده حق عبودیت، حق بندگیش را به جا اوورد، خداوند دیگه او را راها نمی کند. اون خداوندی که فعال و لمایورید بود، اون خداوندی که ارحم و بود، اون خداوندی که علیم بود، لازمه این ایمان به ملائکه به پیامبران خداوند لازمه این ایمان اینه که خداوند هر گاه که بخواهد ما را نصرت میدهد. هر گاه که بخواهد ما را پیروز میکند دیگه اون مؤمن قلبش آرام خداوند یکتا رو دارد و از کسی جز خداوند یکتا نمی ترسد. پس این ارزش این ایمان این ایمانی که خداوند مزمون خواسته اگر ایمان نیوردیم دیگه کافر شدیم به خداوند یکتا. باید از عقوبت خدا بترسیم و به تمامی این چیزها و به لوازم این ایمان باید اعتقاد داشته باشیم خدا قلب تمامی ما را آرام نگه بداره و قلبمون را سرشار از محبت خداوند یکتا قرار بده و سبب بشه که پای پایبند به دینش بشیم التزام داشته باشیم و حرفش را بپذیریم و اطاعت بکنیم و اون بنده ای باشیم که خداوند ازش راضی هست در راستای رضای خداوند حرکت بکنیم و زندگی بکنیم و نفس بکشیم این چیزی که خداوند از من خواسته و بندگی خودمون و خاری خودمون و نیاز خودمون را به خدا ثابت بکنیم. پروردگارا نیازمند نیازمند تو هستیم و هیچگاه از تو بینیاز نیستیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آل محمد.